دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد که چو سر پای بند بندست و چو داغ دارد سر ما فرو نیاید به کمان عبروی کس که درون گوش گیران ز جهان فراغ دارد ز بنفش تاب دارم که ز زلف او زند دم تو سیاه کمبه ها بین که چه در دماغ دارد به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف عیاغ دارد شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن مگران که شمع رویت به چراغ دارد من و شمع اصوب گاهی سزدر به هم بگریم که بسوختیم و از ما بوت ما فراغ دارد سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم ترباشیان بلبل بنگر که زاغ دارد سر درس عشق دارد دل درد مند حافظ که نخاطر تماشا have all your bars da